سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیق الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علیه سیدنا و نبینا محمد الذين الظاهرين المأسومين لا فيما بغية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة أما يسكون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهاديين المهديين السلام على جميع بيو الله ورسله وملائكته جميعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على السديغة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيده شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر إذن النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباب السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الذكي الأسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المحدي وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيث غبري الليل والنحار صلاة جاء الله آخر الأحد مني لزيارة شكور. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن قال الحسين عليه السلام انما خرجت لطلب اصلاح امتي الجاده اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واثيرا لسيره جدي وابي تعرضوا فندم ان ابي الله عليه السلام من خارج نشدم مگر اونکه که در امت جد خود اصلاح کنم اون فسادی را که ایجاد شده است این و فرمایش حضرت که در قالب وفیت نامه به برادرشون جناب محمد حنفی نوشتن که برای اصلاح امت جد خارج میشم. نیست جد اینکه که زیانگر احساد راهج قمومت اسلامی امروز روز بوده است. اگر در جامعه احساد نبود اصلاح معنا پیدا نمی کرد. این احساد در چه سطحی بوده و این آن چقدر خایهی و ریشهی و گمیانی بوده است که از دید یک امام معصوم چون امام حسین علیه السلام شهادت و اثارت و تقبل اون همه رنجه ها و مسائل و مشکلات حضی شرعی عقلی و منطقی می نماید. اگر امر خیلی عظیم و مهم نبود ایجاد سحنه ای چون سحنه ای کربلا را لازم نمی داشت حتی نشان میدهد فسادی بس ریشه‌ای طرحی بس عمیق برای زایع کردن و آلوده نمودن حقایق الهی در کار بوده است همان گونه که آیات قرآن کریم پیش بینی می‌کرد و اشاره نمودن روایات شخص پیغمبر تذکر داد و اعلی خواندم ناظران حقیقی تاریخ اسلام امیر المؤمنین و باطمه زهران الله علیه ما تذکر دادند و پریاد زدند و جان بر روی این کار نهادند و در تیه این چند روز اخیر با توجه به منابع دست اول احل سنت که چه ترحه ماهرانه زیرکانه ای، درای لطف کردن از بین بردن جمیع ارزشهای اسلامی و الهی به نام اسلام و دفاع قرآن در صدر اسلام پیدا شد آخونجا که ابتدام لبه حمله را متوجه شخص پیغمبر کردن شخصیت پیغمبر عظمت پیغمبر الهی بودن پیغمبر اون چهره خاص ارتباط با حضرت عقل و ملکی ملکوتی بودن یک رجل الهی را تا اون حد پایین آوردم که اشتباه میکند می میکند هجربیات می روزمره زندگی به او یاد میدهد مطالبی بیان دارد پس ما در مقابل چنین شخصی حتی اگر نفس سریع هم داشته باشد حتی اجتعاد داریم و یک بحث که گذشت این بود اگر پیغمبر فرموده از شنین باشید چون ما پیغمبر را این گونه و چهره پیغمبر را برای مردم این گونه معرفی کردیم به خود حق می دهیم در مقابل نظر پیغمبر بیشتیم از خود هزار نظر کنیم به فرصتی که بود مجمل تا قسمت بعدی اصولا وقتی ما میخواهیم هر موجود استکمالی را از کمال بازداریم گاهی به کارهای سطحی روبنایی مشغول میشویم گاهی به کارهای قومتی زیربنایی، همان گونه که انسان موجود استکمالی است و رشد می کند یک یا هم در حد خودش موجود است، و رشد می‌کند. من اگر برای خراب کردن، خشکاندن و زائد نمودن یک درخت بخواهم اقدام کنم، دابی یک برگ او را می‌کَنم، یک شاخه او را می‌شکنم، یک ضربه به تنه درخت میزنم. اینها تا حدودی امکان جبران دارد و می‌شود ترمیمش کرد. اما اگر ریشه درخت را زدم اگر عوامل مخرب ریشه را وارد ریشه و قمط انگیاه کردم هرچه به ظواهر هم برسم هرچه با آشیدن مایعای شباب کننده به برگ و درخت که ظاهرش شفاف شود و جلبه کند من به کار بگیرم چون ریشه گیاه را آلوده کرده و پاسد نموده ام چی دینه می گذرد که این برگ و شاقه و مرده شده شده و از بین خواهد را لذا اونهایی هم که برای افساد در جامعه اسلامی خواستن کار کنند انگشت روی ریشه ها گذاشتن یک شخصیت پیغمبر و خایم بیا کما این که هم در جواب ما هستن کسانی که با قلم و بیان تحت عنوان پیغمبر شناسی جدید این گونه پیغمبر را معرفی می‌کنند. کنن متن اشاره کندم و اگر شد با خاهم کن بعد از که چهره پیغمبر رو پایین آوردن، در اون خوراکی را که برای ریشه این بیاه لازم بوده اون خوراک را بگیریم به عامل زایع کننده ریشه به این ریشه بدهیم انایت به فرمایی کنم اگر یک بود گل ارزنده به من دادی، و به عنوان یک مهندس کشاورزی، به بنده می فرمایید باید این مقدار مواد رشد دهنده گیاه این مقدار آب این مقدار کود حتما به این خاک هر ماه هر چند ماه افزوده شود که اگر نشد این دره خوش می شود من یک زمان نه این که این مواد را به این ریشه نمی دهم مایه خشک کننده چون نفس و آب جوش یا برسی از مواد از بین برنده ریشه را به این ریشه می باشد مثال دیگری بزنم اگر کارخانه ای داریم که مواد اولیهی ای به این کارخانه می دهیم که کارخانه با کاری که می کند طولی داشته باشد ما یک زمان کارخانه را خراب می کنیم هرچه مواد اولیه مفید به این کارخانه بدهیم چون کارخانه است به این حد اکتفا هم کارخانه را خراب میکنم هم مواد اولیه غلط به این کارخانه میدهند. یعنی اون مقداری هم که این کارخانه میتواند کار کند چون مواد اولیه خرابت طولی خراب است تولید خراب شود دومین کار خطرناکی را که منافقین صدر اسلام زیرکانه با زیرکانه دان خواهنانه دشمنان اسلام و دوستان نادان در جامعه اسلامی ایجاد کردن بعد از خوبیدن شخصیت پیغمبر و آوردن عظمت محسومین علیه مسلم این بود که کارخانه ذهن امسونه ها را از فعالیت های لازم اندیشه باز داشتم مواد خراب معلومات و از آن دادن چگونه؟ یک گفتن ما حق تفکر و اندیشه نداریم ما چیزی نمی فهمیم ریشش رو عرض کنم بعد برگردم به منابع وقتی معاویه دید خوارج مندربی خاصی دارند در مقابل علی استادن میگوین تو اشتباه کردهی در جریان حکمی و باید توبه کنیم اگر توبه نکردی شمشیر به رویت میکشیم. از نظر خونه علی اشتباه کرده بود، معاویه و امراض و اگر این مردم اینگونه بارایند و تربیت شوند که حتی به نظر خودشون شخص علی اشتباه کرده با او بجنگند پس در مقابل ما هم خواهن ایستار چه بکنیم این تفکر را از مردم بگیریم و اندیشه مردم را عوض کنیم گفت در جامعه رواج بدید مردم اولا جبر اختیار نیست ثانیان با مدرک می که اینها رو محابیه شروع کرده اولا جبر اختیار نیست ثانیان ما ها که نمی توانیم به فهمیم اصلا چه خوبت چه بد است هر که هر کاری کرد، اگر در دل تست خیردارد همین کافی است. یعنی گروهی رو درست کرد به نام مرجعه که طرز تفکر مرجعه در تاریخ اسلام مگر غیر از این است. رجای و امید به نجات از پردردگار داریم. همینقدر که شهر انجام بدهیم اولا جبرت خدا قاسد ثانیا چون در دل ما ما خیر را می قاییم همین کافی اگر ذهن یک انسانی اینگونه بار آمد واقعی جلد صفحه نخصد و چهار و سیاست یک صفحه صد از عبول از ازگری نقل می کند نقفت که اندیشه غلقه اراده خدا بر افقال انسان در خیر و شر و زشت و زیبا متره کرد و این رو در جامعه رواج داد که هرچه خدا به راهد می شود اگر تکیل بد می کند خدا خاکشه خوب می کند خدا خاکسه ما واقعی جلد سه صفحه نه چهار ابن قطعیبه علی امام و سیاسه جلده یک صفحه و, و وقتی آیشه به معاویه اعتراض کرد این کارهایی که تو می کنی با. پیغمبر بر نمی کند نه اینکه که آیش دلش برای اسلام سوخته است، بر مبنای بده های سیاسی که بین خودشون اصطلاف در گرفته بود ابن قطعیبه می نویستن در جواب اعتراض آیشه بود مگر نمیدانید تقدیر خدا عملی می شود هرچه خدا خاصه همون خواهد شد من چه کارم؟ خدا خواسته است که من این کار را بکنم اگر در یک جامعه این تفکر قرطاید شد اگر در یک مردمی آرخانه ذهن زه اینگونه بار آمد چه می شود؟ احمد امین مصری که بسیار ضد شیعه در کتاب زهل اسلام گلد صفحه اشتاد یک زیهر مستشرق محروف. در کتاب العقیدت و بشریعت الاسلامیه صفحه 85 تا 87 میگه همانطور که بنی اومیه از مذهب جبر برای موجه جلوه دادن رفتار خودشون بهره برداری می در مواقع ناراحتی ملت و زمان تحریک مردم بر علیه ظلم مردم استفاده مینمودند عنایت دارید من یک مدرک از شیعه میخوانم تمام از منابع زوی و قابل قبول دنیا اهل سنت یا مستشر دین اهل شیعه سنی است دقت کنید همان طور که بنی امیه از مذهب جبر برای موجه جلوه دادن رفتار خودشون به یعنی هر کاری می‌کردن اگر کدیو هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم هست اینم سنن ابن ماجه است که عنایت داری یکی از کتب معروف دنیای اهل سنت است به نام به جزء سعه سته اونها یعنی از اون شش دوره کتاب معتبری که قبول دارن جلد اول سنن ابن ماجه صفحه هشتاد و سه ستقدر فرمید قراج رسول الله زاق یوم من بعض حجره در یه روزی از بعضی حجره خارج شد و دخل المسجد وارد مسجد شد فعضا حبت حلقتین دیت و گروه تو مسجد هم احدا همار یک رعون القرآن و یدون الله یه دست قرآن می کنند از دیل مطاعد می پردادن فضال النبی خیر پرمود هر دو کار خیر می کنن ها اولائی یک القرآن و یدعون الله این اجه قرآن می خانن. و خدا و یاد میدن و انما با و معلم من مبعول شده ام به عنوان معلم که یاد بدهم فجلس ما هم رفت با اون ازده میشد یعنی چی؟ یعنی ارزش تعلیم تعلیم یاد دادن سکر و به کار انداختن حتی در مقابل ذراعت قرآن و دعا مرحوم این که سنی نویسد در منابع شیعی ما مرحوم حاشد عباس قمی رضوان الله مظلوم مفاتی هز جنان که راه ذکر و نیاز و دعا و سوز و گداز ارتباط با خالق را مزرح می کند در آداب شب که از مهمترین موقعیت ها برای دعا و توسلت از امام صادق نقل می کند از بهترین عبادت ها در شب بحث علمی را به دین است که مفصل داره حالا چرا دو اینو ارجاع این رو در صفحه 83 جلد اول سنن ابن ماجه نقل میکند در صفحه 85 چه نقل میکند حدیث 232 و و همین روایت رو سنن ترمذی جلد 3 صفحه 215 نقل کرده ذکر فإن صفحه 34 و, و مسند جلد 3 صفحه 330 و, و مسلم جلد 4 صفحه 88 و, و نقل کرده أن النبي قال نزل الله امرئا سمع من حديثا تبلغه شادا بیرداند، روستی بیرداند، خدامن، خنکتی را که حدیثی از ما شنید و اون را به دیگران ابلاغ کرد، اون را به دیگران رسوند، فروت و مبلغ نعبد و سام این، خدای شاداب کرداند اون کسی را که روایت را از ما شنود و برای دیگران بیان می کند و چه بسا آن کسانی که شما روایت را برای آنها بیان میکنید به دو نظر هم از شما بهتر بتوانند آن را افت هم از شما بهتر بدانند در اینها روایت را نفت کنید پس پیغمبر گفت؟ بدید تعلیم بدید روایت رو نقد عقل این رو خود سید در سه سته و منابع بسیار دیگری که همین مطلب رو باز بیان می کند من یک نمونه دیگر از مصنف جلد چهار در این زمینه براتون می کنم. که خود منابع اهل سنت اصرار بر این دارد که حدیث بخوانید، تیغمبر قرموده حدیث نه رو کنید و احادیث رو بگید در صفحه شست و یک مطمد احمد زمینی که خود نقل می کند در حاشیه جلد این جلد چهارون مطمد احمد اونجایی که فشرده کنزل اممال مطقیه اندی رو بیان میکنه میگه می گه انسلمان فالت و انس رسول الله سلمان میگوید که سعی کن بر سوال کردیم یار رسول الله آل حدیثا حدیسان،اللذی ذکرته راجع به چهل حدیث،چهل حدیث تو شما فرمودید برای ما توضیح بدید. تا رسول الله من به ذخا امّتی دخال الجنة و حشر الله مع الأنبياء والعلماء. تی که چهل حدیث را سنت تی دیگران در خدا او را در بهش مورد انبیاب و علما مخشور میترداند در قائم همین صفحه شستویه بیان میکند جمعه تو مالکن یعجی تو انه امر ابن الخطاب مالک نقل میکند که امر اراد ان یک سبه آزه الاحادی امر خواست این احادیت را بنویسد، او کتبه یا این احادیت را دست رو دست بللیسن. یا این ها را دنگارند انزیم من الله یک تو بها ثم كتب نامه نوشت به شهرها فرستاد بمن کان اندعو شيء من ظالم حرکت از حدیثی از پیغمبر پیش شب فیا باید معرش کند و از دین بدرد. شیشو. البته شما میگید تهران بردم که 40 حدیث واسه من منبع براتون بخونم از فقط شن. هم از مصرد احمد هم از سنن ترمزی هم از سنن ابن ماجه، هم سعی بخاری مصلم هم داری کنم اشاره کردم اینها رو تیغمبر فرموز خدا سادا کرداند اون کسی که روایت منو پخش میکنه به مردم یعنی این خوراک که از سننده کارکانه زهن ها بگید مواد از ولیه درست رو در ادهان وارد کنی بذارید این زهن ها فعال بشه به کار بیفته تحلیل کنه تفسیر کنه توضیح بده نتیجه بگیرن اما میگه نه تنها اومد بذارید اول یه سری منابع بخوانم بعد از روی همین کتابان برای شما میکنم تذکر اطول استاد مال شمس الدین زحبی از برجستگان اهل سنت جلده یک طبی عمر ابن مسعود ابو الگاه ابو مسئول انساری را آورد تو مدینه تو حق ندارید از شهر مدینه خارج شوید. گفتن چرا؟ تو احادیث پیغمبر پیش شما میترسم این ورور برید احادیث پیغمبر رو پخش کنید باید شما در مدینه در محاصره من باشید که مبادا از این احادیث به دیگران بگوید طبقات الکبرات جلد پنج صفحه صد میگه وقتی که خلیفه بالای منبر بود ابو بکر قسم داد هر نوشته و حدیثت بیغم من دارید بیارید پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی مولا که جواب داد خانه می نشینم خونه دل می خورم همه مشکلات رو تحمل می اما سیره شیخین خیر من در مقابلشم می با اینا که گفتن این کارا رو بکنید اینا که توضیح دادن خود پیغمبر فرموده روایت نقو کنی، بعد ببینید برای بازیگری با این روایات که کار کردن همین مسند احمد سمعت عثمان بن اطفان على المنبر یه بود عثمان بلای منبر, منبر میگفت لا یه لا لعدن یر بی حدیثم یسمدهی علا عهد عبیب ولا علی عهد عمر نه باید در میان شما کسی حدیثی نقل کند که اون حدیث در زمان عبوبش و عمر نه بس فقط از روایاتی که از فیلتر ابو بکر و عمر گذشته است از اون فیلترها شما حق دارید روایات رو نه کنید در همین کتاب سنن ابن ماجه وقتی مساله عدم مسئله یادگیری روایت میشه اون گونه بیان میکند اما مسئله منع حدیث می شود کارو به کجا رسوندن از همین کتاب صفحه 83 84 85 خوندم براتون روایت اونجوری صفحه 11 جلد اول سمیتو شعبی یقولو شعبی میگوید جالستو ابن عمر با عبد الله ابن عمر مجالست کردم سنتم یک سال سمیتوهو فما سمیتوهو یو حدیتو ان رسول الله شیعن در تمام این یک سال یک روایت از پیغمبر برای من نقل نکرد چرا؟ زخم ندارم؟ وگرنه امروز برای شما لاعقل در کتاب با ازم و ذکر صفحه و شماره صفحه که تو زهن دارم میگم که نوشته شده است چرا اینقدر قالت داده و قالت باغر میکنید تا اینجا گفتن همون کتابی که پر روز برای خوندم صفحه 149 بعدش رو بخانید میگه ما امروز اتبرین احب میکنه معاویه رو وارد اتبرین میمیستد معاویه وارد مدینه شد با طبقت ریسوار رو بر مرکب تو کچه بنی هاشند و شبور میکرد به رسوی مسئل و نبی ادهی نشسته بودن من جمله ابن عباب از همه به احترام معاویه بلند شدن ابن عباس محل نزاش و بلند نشد معاویه لجش کرد و ابن عباس سرموی علی هستی رو اغده ای که راجب علی با من پیدا کردی زیدی علی رو چگونه کنار زدم ابن عباس گفت برم اونجون تمام قرآن تو از قضائل علیه تو میتونی علی رو کنار بزنی گفت نمیگذارم گذارم مردم قرآن بخوانند. گفت تو نمیذاری داری قرآن بخونن گفت نه قرآن, قرآن بفهمند. چه دشمنان دانا در جامعه ما چه دوستان نادان مخالف تفسیر قرآن هم مخالف تفسیر قرآن چرا چون اگه بنابش قرآن ترد برداری بشه خیلی حقا ابرو رو میشه اگه بنابش روایات رو بیارن تلاش علمی روی روایات بکنن خیلی ستندیش بالا میره لذان ويات المنهاك صفحه 12 همین کتاب ده عمر و در دوران خلافتش ما رو معلومه کرد بریم کوفه یه مقداری هم ما رو مشایعت کرد دنبال ما اومد مه ناه موض انیقال و درغوشررا تا اومد بیرون مدینه مکانی بود در واض شر نام سررا و اونجا ودید فقاله حقدر رو نه علم وشه ودم میدونید چرا تا اینجا دنبال شما آممدم؟ این معلومه میخواد از جمع دلا بشه بیا گشتی بگه شماهایی که فکر منید برید میندیم و اوقدر کارای معمولیت های وا شما ها بدم میدونید چرا با شما ها اومدم؟ حالا. خالت... لما قلنا. لحظ صحبت رسول الله و لحظ الانسار که خلاقه ما ها چون اصحابی بودیم که پیغمبر رو دیدیم ما ها مصاحب پیغمبر بودیم ما با انسار بودیم شما به احترام ریشت بیدی ما که اصحاب پیغمبر بوده این پیغمبر رو دیدیم و انسار پیغمبریم دارید ما رو قبلیت میکنید خلاقه همار گفت لیکن مشیت و معکم لحدیثا اردت شو انها به نه نه لا یزدا نیومده من ولایی چیزی دارم فقط زمینه‌گرفتی چه تو جنب نگفتی بعد یواش یواش زمینه رو آماده کنید یه عده مسئول این کارها بشن که تو از ها ایجاد کنند و قرأت تو ان تقظو هو لما مشایع و ارا تصمیم گرفتم این حرکت کردن من با شما این مشکردن ما با شما این بوده که اون مطلب رو, رو به شما بگم خوب متوجه باشید نسبت به اون مطلب انکم هتجمون علی علا من بالقرانه پی که حدید که دیزن مرجان شما میرید راز مردمی که قرائت ورثی که جماها با مردمی که قرآن میخوانند در هاشون زمزمه و تنین قرآن مثل دیجی که داره میجوش قلقل میکنه اینجوری داره این مطالب قرآنی تو دلشون هی قلقل میکنه و را و مسو الیکم اعلا و قالوا وقتی میان به سراغ شما رو میبینن عصاب بی‌دری گردناتون میکشند و میگن اصحاب محمد صلی الله علیه و روایت رو پاهش بدید نکنه تو این مردم که قرآن بلدن شما روایات پیغمبرم بگید با روایات پیغمبر قرآن رو بهتر به وقتی فهمیدن برای ما درد سر بشه من تا اینجا دنبال شما اومدن گفتم داریخ میرید نکنه روایات پیغمبر رو مردم بگید یعنی بلا کشبی این درختی که الان ایشت مواد غذایی میخواد درخت نورت اسلام دارن مواد تشازش میگی بشن نید خواهیم میگه ابو حریره داریم میدیم به شما کتاب صفحه دوازده حدیث شماره بعدی سهبت و مالک من المدینه ایل المکه همراه شدم با سعزب مالک از مدینه تا مکه هم خبر شدیم سما سمیتوه یعط سعن النبی به حدیث واحد یکی دونه حدیث در این دوازد تیز در روزی که با هم دیگه از مدینه تا مکه میرفتیم برای ما نهدونه کرد وقتی بهش گفتم چرا گفت نمی دونی که گردن می دنن. زنان این حدیث نقل بشه از یک اومدن چیکار کار کردن اصلا حدیث نقل روایات پیغمبره به مردم نگید چرا؟ یک بحانه این بود که حتما کتاب کتاب خدا هست اما من از مصند احمد انبل برای مطلبی میخونم میخواستن هم شخصیت پیغمبر رو پایین بیارن و همین تحلیلی که با اون کتاب کردم مردم آگاه نشن زمانی که مردم آگاه نبودن از اونها بهتر میشه سواری گرفت پس بر این حساس باید تو جامعه بیان ببینید اگر یه کارخانه رو همونگونه که مثال زدم شما میبینید تولید خیلی جالبی داره میگه هم مواد اولیش رو خراب کن هم کارخونه رو از فعالیت بنداد ذهن را از فعالیت تفکر، تعقل، تدبر اندیشه بگیرید مواد رو بگیرید و برای این که علاقه به این مواد نکنن مواد خوب رو بد معرفی کنید تو بعضی سیاست های اقتصادی جهانی هر میگن مثلا برخی روغوا برای این که تولید رقیب خودشون رو از میزون بدر کنه میاد میگه که اون سرسانزاد اون هم چینه اون هم حتی هایی که تو دنیا بر مبنای برخی منابعی که افراد میخوان سو استفاده کنن اینا اومدن روایات بر را بد معرفی کنن این مسند احمد جلد تو سطحه سد و شست و دو یک قسم فرمایی بسیار نکته زریف در اینهاد جانسود و دمبلاف ان عبدالله ابن عمر همین عبدالله ابن عمری که قبلان کندم یک داز با هو بودم یه روایت برای من نخوند ان عبدالله بن عمر قالم کنطق اکتب و کل شیئ از معومن رسول الله هدچی از پیغمبر میشیندن میمشن پیغمبری دیگه میکردم، یاد داشت میکردم داشته باشم کنتر اکتو بو کل شیحن اتمعه من رسول الله اورید و حفظه و اصف نیم داشتانی نوشته ها رو حسنن نگه به دیگران برسنن فنهت نی قرش اینجا نمیده کی در های دیگه داریم فرصت نیم فضیات داشتانشون بدن یعنی باباش خمره سنو بالاخره از اون قبیلت دیگه و نحس می منو باز داشت تقالو که دا من گفتن این نکه حقه با کل شیعن حقوم رسول الله حقیق بر بیشنبی می نویشی و رسول الله سه شرون یه تکلم و در بر رضا تیغمبر یه بکتر اصبای اصبایی میشه چیزایی میگه گاهی تون میشه یه ارشایی میزن اصباییم راضی میشه خوشحال میشه شادا یه چیزایی میگه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر چی کارش کشم آلا خاله سیاد داشت کنید مرزوی الله حرفای پیغمبرم همچنه نه پیزه کنار آقا اون میدونه پیغمبر رو خدا چی معرفی کرده پیغمبر رو به تو حدیث رو به توبه و انفکت توانه می که تا من از نوشتم دست زدشتم گفتم اول خواستم نمی‌دیدم دیگه چیز داره کهای پیامبر رو می‌شن گوران هست دیگه علت چی دنیت چیه چون گورانو اگر مارون نلات نیو انجلو میشه هر جوری دل مونده خاطرکشی بکنیم مگر همین کتاب نهون دنست میگه از معافیت 400000 ذره هم به ابوهروی رضا او آیه و, و من انصار من یشیر نبسر استعفا مرزات الله رو تأثیر کن راجبه نمال جمع تو منم این کارو کردم ولی نگرست ولی نگرست حالا یه حدیث ادامه داره ادامه شو بینید حضورهای میگه و امسکت تو ان الکتاب من دست بگهدشتم از نوشتم فزکر تو سالکرد رسول الله و این مطلب با به پیغمبر گفتم فقال پیغمبر فرود تو. فبلدی نفسی بیده ما خرج منی الا حق پیغمبر فرود اینیش خدا قسم، اون خدایی که جان من به دست اوست، چیزی از من صادر نمی شود مگر اینکه فقط حق باشد یعنی در حیات پیغمبر بی انصاف داشتن پیغمبر رو میکوبیدن بر روایات پیغمبر رو نمیذاشتن بعد رو که عبدالله امر به خودش حق میده بیا در مقابل پیغمبر بگه یا رسول الله من روایات شما را مینویستم به من گفتن نمیسی چون پیغمبر یا بشر عادیه. بعد که هرپایی میزنه که معلومی صد باشه و پیغمبر بفرماید نه بمیشید زیرا همچه من میگویم حقا این یه خطبید تا این اندازه از آن بگیرن، خراک فکی رو بگیرن، آیات و جمعی دیگه مطرح کنن، تفسیر و تعمق رو از میان ببرن اما در مقابل یه اشاره بکنن، رجال کشیر، دیروز یه مطلبی از عبوزر را کنخوندم خب اگه شمشیر هم به گردن من بگذارید چه میکنم؟ از از این که شمشیر کارشو بکنم هر که هم میتنم مثل هم تنمار بالای دار بودید چه میریدم از میثام تمام مار در واقعه کربلا صرف برخی از منابع زندگان سنت مزیار رو من جمله خود مختار رو که احتمال میداد ممکن اینها سر صدا بکنن یا خودن به امام حسین به پیوندن یا در کوسه اینا رو زندانی کرده بود من جمله میثام ما من جمله مختار مختار برادر زن عبدالله ابن عمره فاهرج زن عبدالله عمره از این جهت اثره یک ملاحظه‌ای می‌کردند مختار اومد با ابن زیاد کلیه که دو کرد تندی کرد ابن زیاد رو فکر نکن به خاطر عبدالله امرو ملاحظه میکنم میدازم سندان دو از زندان، بذار آقای ماموز سندان بیاد توفه بعد من میدونم اون مختار مختاران داخلندان هیچ خبر نداشتم تا وقتی که ارترا را آوردن توفه ابن زیاد بوده مختار رو بیارن سر استاد مختار آوازیش خبر ندارن تو زندان چیه مختار اومد ابن زیاد سر بریده یابی عبدالله رو تو دستش گرفته بود روش پوشونده بود که چه چه دیگه نوازه مختار یاد که گفت حسین بیا توزه واسه چه میکنیم گفت بله گفتم منتظرم آقا ام بیات حسین اومده توفه گفت نه اشتباه کنی و سر نیومده تو حسین اومده گفت نیومده اگه حسین میومد تو حالا رو تخت نبودی یه دفعه درو از روزن برداشت سر بریده یابی عبدالله رو به مختار نشوند مختار سر داشت سر بشت. و با گریه برگشت می بردن بسید زندان از کنار سلول میسم تنمار برد می شود. از اون روزنه ای که بود با گریه به میسم گفت میسم حسین رو هم پشت میسم تنمار برد مختار گفت من از مولایم علی شنیدم تو از این مردم خونخواهی می کنی ولی من را این مردم به عشق مولایم دار میزنن ولی به بعد قضیه یه اشاره بکنم رجال کشی آیون علما عنایت دارن از رجالی که در بحث‌های حدیثی بزرگان ما استناد رو زیاد میکنن صفحه 80 میگه میثم تمار وقتی بالای دارغول این عبارت رو میگو ایو الناس من ارداد اعادیش عالم انام را اعادیش پنهانی را از علی ابن ابی طالب کا پیغمبر نہ کرده بشنود بیا بیا چه من بیا بیان, بیان بیان بیان کنم خود دست به بگی قتل صبر میدونید چیه در قتل صبر اینجوری نیست که یه دفعه طرف رو بکشن مثلا دست رو میبرن روغن داغ شده میریزن که خون بند بیاد طرف نمیره اگر تحمل داشت جا به جا بمیره تحمل می این دست مجتم رو بریدن روغن داغ شده ریختن رو رون برد خون بند اومد یه مزاری بیروش مو و کرد آه چشم ها کرد چی گفت مردم شنیدم از فیغمبر فرمود من کانوتا و, و مرزون شنیدم پیغمبر میفرمود اینی تار کنفیکم و سرلی کتابت لا و عدرتی ابن سیاد زبانش را بپرین زبانش را بپرین فوقات ابن سع جلد چهار صفحه 229 اکبرنا مسلمتن ابراهیم قال عدسنا ابو کهب صاحب الحریر قال ده کنا عبد الاثر ان الاخفف نفس قال اعطيت المدينه ثم اعطيت الشام فجمعت فاذا بن رجل لا ينتهي الى ساريه الا فر اقبوا غيرت المدينه و ازونجا رفتم شام و روز جمعه بود و نماز جمعه رو خوندما تو مسجد دیدم یه آقایی از این ستون میره بل اون ستون همه جمعیت دو دو فرار میکنن میره از اون ستون میره و غلی اون ستون جمعیت همه از اونجا فرار میکنن میرن من تعجب کردم که چیه مردم همه این آقا فرار میکنن تا یکتت این آقام داره نماس خودتون میخونه در اونجا قاله فجلت تا الیه فقال داره رستم پیشش نشستم و بهش گفتم یا عبدالله منم ای وضعی خدا تو کیستی؟ قاله انا عبوزر تو من عبوزرم ابوزر رو میدونی اول تبعید کردن به شام عثمان به معاویه نوشت تو میتونی ابوزر رو یه جور رامش کنی تو خیلیارو رام کردی بعد از مدتی که ابوزر تبعید به شام بود معاویه دید نمیتونه کاری بکنه ابوزر رو برگردوند به مدینه به معاویه گفت نه نه کار من نیست خودت ببین چیکار کار بکنی انجام بده مثلا این دورانی که ابوزر توی شام تبعید بوده کاری کرده معاویه وقتی ابوزر تو مسجد نماز عبوزر فرار میکند ایدازه میدند حاله چون از علیه هم فرار میکند نباید مردم سر صفحه علی بشیند نباید مردم پای بحث عبوزر باشد باید با سازی ها بدن سنگ بزنم اگر عمری بود فردا از مدرسه انشاءالله قائم کو وقتی امام حسین مردمی را که به نام پیروان قرآن و اسلام به صورت بار بیارم که از موعظه بنی حاشق در دلت یک قرارداد امضا کن عباس تو برای این که این مردم رو رسوا کنی تمام عمر در مقابل امام حسین برادر نگفتی گفتی یا سیدی یا مولای یعنی مردمی مولاست این سیدی یکی از قساطید ما چه زیبا می بود چه زیبا می گفت. می بود نکنه از یه سنگریزه کم تر باشید گفتم چیه درست دار تو رو می دزن توی اوق یانوس چهار تا موج ایجاد می کنه. شما در از یانوس امسانیت بندازی سنگریزم چکون ایجاد نکنید؟ در اندیشه مردم، در تفکر مردم، در تحریم نسبت به مردم، در خدمت نسبت به و شریعت شما پیرو علی و حسین و عباقی کار، حرکت، اقدام، جدیت، فقاریت اگر بعضی مشکلاتی که به ما آمین بیشند و بیان میکنند و در جریانیم و میبینیم و بخواییم بعضی دونا رو بگن میترسم تضعیفم از قد حساب بشه صحاب آن میگه به ابوذر هر وقت نزد فجلس و علیه فقلت یا عبدالله و قلت له یا عبدالله من انت و کی هستی حالا انا ابوذر فقال لی فانت من انت گوت کی هستی میگه که نمیدونی کسی بلا نیست توی شام نزدی که من بشه تو گویا که کی هستی دیگه از جای دیگه اومدی حالا گفتم انا الا نسطب نقی حالا قم عنی لا اعذوک بشری و کوش کوش بگو گرفتاری من به تو نرسه شر من به راسته تا بگو تو کیفت اذونی به شر یعنی چه چگونه خلاص تو شر به من برسه قال ان عذاب یعنی معاویه نادمناضیه الله یجالسنی ادم ندا در داده از معاویه که اعدی با من مجالست نکند چرا چون ذهن ها بیدار می شود چون اندیشه ها شل گردد چون سفرکور در این فاز بر مبنای مجرد پس پیغمبر رو بکنیم دو احادیت پیغمبر رو نه نکنید؟ سه دروغ تو ذهن مردم بکنیم دروغ رو تا چه صورت تو ذهن مردم بکنیم آقا شوخی خبر شهادت امیر به مردم شام رسید علی در مسجد در حال عبادت شهید شده است مردم دارتا عجیل از همدیگه می پوستیدن که اه علی تو مسجد چیکار داشته مگه علی مسجد هم می ببینید از اون بر ذهنو ها چی گونه ببرن از این ورزهنو برادر ممکنه بگی چرا از گذشته میگم نه من برای امروز شما میگم الان در جامعه ما من احساس رسالت میکنم یا غمره بنی آشم تو شاهدی ولو به قیمت جانم تمام شد بگویم الان غلمهایی در کارست روزنانه ای که همراه دارم اگر لازم شد ارائه بدهم چی نوشته ای خدا چرا نارومین و برخی دشمنان ختم میدن میدونید چی نوشتن دیگه پسر و دختر باید آزاد باشه انقدر سخت نگیری ما در فقه فیر... این مال تو سه چهار قبل ما در داریم که اگر زنی از شوهرش جدا شد در ایام عده ازدواج با اوش یابد نیست ولی خاصداری اب ندارد معلوم است با کسی که در عده دیگریش میشه معاشرت کرد و خواستگاری کرد یکی از معصومی زنی که از شوهرش جدا شده بود او را دوست داشت برای او پیغام فرستا ازده تموم شد من میام برای ازدواج به کسی بول قول ندیا یعنی امام معصوم به زن شوهردار علاقه داشته منتظر بود از شوهرش جدا پشه. چرا تونین می نویشی؟ چقدر مضلومیت نسبت به علی و آده علی نگی من نمیگم خفا نکنیم آمار رسمی گرفتم از دانشگاه آکسفورد سوئد آمار رسمی ازشون گرفتم برای چاپ یک کتابی می‌خوام دکتر مدینه فاضله اروپا سوئدی گفتم من شرایط زن در این جامعه رو می‌خوام به من آمار رسمی بدید که احتیاج دارم گفتن تمام خانوم ها که از 40 می‌زرن بیش از 80 درصدشون تو دو چهار افسردگی امار رسمی دانشگاه و مهر دادگستری سعیده بیش از 80% زنهای بالای 40 سال در کشور سعید مدینه فاضله اروپا دوچار بیماری افسردگی روحی است گفتن چرا؟ گفتن به جهت اینکه که فهمیدن فقط ابزار ارزای شهوت مردان پرش میادیانه زند مثل مرد مرد مثل آه زنده به عنوان یه معلم اگه چهار سال برم سر کلاس بیام بعد احساس کنم از من میخوان سو استفاده کنم از من میخوان اهداف حلید خودشونو تامین کنم چقدر خب رنج میبرم و عذیت میشن شما دو تا شریک با هم دیگه ده سال بخوایی که شراکت کاری انجام بدید بعد از ده سال ببینید شریک شما هیچ روحیه همکاری مساهدت با شما نداشته بخواسته از شما سو استفاده کنه چه حالت دلزدگی و دلسردی به شما دست میده من دیگه به کی اعتماد کنم آقا زنها شوهرهاشون اعتماد ندارن بر مبنای آزادی رفتار زن و مر راحت من به صورت آماد ها میگن ما اطمینان نداریم شوهر ما اتخونه میره بیرون واقعا با زن دیگه اتیانه لذا چرا من با مرد دیگه نباشم آقا تجربه کردن بیچاره شدن نظام خانوادگی تاشیده اخلاق مرده اون وقت مایی مکتب علی داریم مکتب قرآن ما زهرائی داریم که به میگیم می زهرا بعد از پیغمبر لبخم به لبش نیامد الا یک موره کجا بود تو به سر بود از ما گفتیدم زهره سلام الله علیه ها نگران یک قضیه چقدر یه بیوی جان من می چون تابود های اون زمان مثل برانکاب های آلا بدن که روی تابوت میذاشتن جثه معلوم میشد گفت میترسم در تشیه جنازه جسه ی مرانا حجم جسته مرا تازه کفته دست نیبه لیل دفل نیبه لیل من شب قصف و دف کنید کسی نیا چهار تا کهیر مدنس سلمان و عبو زربنات بیا با زهران نگران حکم بدنش رو محرم ببینه لذا اسمامی که گفتم بی, بی جون من که اجرت به هبشه کرده بودم اونجا دیدم یه چهار تا چوب آوردم این چهار گوشه این بران خارچه ای روش انداختم مثل اماری که درست میکنیم به این حالت هم تابوت درست میکنن اینجا دیدم زهرا خندید با خوب میشه زهرایی که خ... نشون بدیم اون وقت وجود مقدس اول پس علیه السلام جانم به صدایش قلبم به صدایش در تمام عمر اینو نشون دارد اون دوده بس هست این کدا سروب جان این اول پس سروب مقام این اول پس سروب ایمان این اول پس سروب مردانگی این اول شده این عوض پر ایمام لکت رو در چشیو و در پیروی راه علی و آل علی ثابت قدم بدار نقشه های شوم دشمنان اول شما یه دیارت میکنید یه دیارت میکنید یه دیارت میکنید حفظ صالح حفظ صالح و لغا کتب نافذ زبور من بعد از ذکر انل ارزه یه رسحا عبادی از صالحون عباد صالح رو قرآن میگه جهانو رو میگیرن از خواب ما زمان عباد صالح و لغا کتب نافذ زبور من بعد از دیک انل ارزه یروسها ابعادی از سالهون متصلام علی کیوعلابت ساله یعنی اصحاب ما زمان باد مسابق فازشان اصحاب ما از زمان باد مسابق فازشان چه بود بعد دلی کمانیشون چهونه؟